بازی هستند که ماشاءالله که تیغه کفر و تکفیر اینقدر از اونها تیز هست برگرده هرکسی هم بگذارن یک آن دیگه دیگهونو گردشو قطع میکنن میگن منصور حلاج زنديق بود میگن مرسود حلاج کافر بود وی بیان اعلی اینو کافر میکنن بعد از هم میگن که ابن عربی کافر بوده بابش چی میرسه مرسود حلاج کافر باشه مسلمان باشه مرسود حلاج مرد درافت داخل دنیا نیست پس از هلا دنبال مسعود هلاش می دیده او نه کافر میکنی؟ اول این است که کافر نیست، کافر نیست. مسعود هلاش کافر نیست. این کفر کافر اینهاي که خوبی نیستن در اسلام جایگاهی نداره. حالا اول بگن که چيزي کافر نیست مسعود حلاج اونهاي که میگن که مسعود هلاش کافر است، تو میبکن انا الحق، انا الحق. چون یه میمان حقم یعنی خدا در من نفوذ کرده حالش ما ثابت بکنین آیا تفسیر من سورالله کجا گفتی که من, من خدا هستم گفته من حق هستم او گفت من خدا هستم کجا گفته خدا در من نفوذ کرده در من حلول کرده این چیزو هم گفته. این تفسیری هست که بعضی از کلمه الحق بیرون بیکنن می میگه انالحق اینجوری بوده انالحق چی هست مولان روم رحمه الله در معنوی؟ ماثنوی مانوی که بعضی حتی کتاب را قبول ندارن میگه عل مولوی کی بوده در حالی که شخصی در وارد مولوی چی میگوید میگه اینکه که بگم در وصف آن عالی جناب نیز پیغمبر ولی دارد کتاب مولان روم پیغمبر نیست اما کتاب بسیار پر محتوی داره امروزه روان و جامعه شناسهای غربی میگویند که مولان روم یک جامعه شناس و یک امسان شناس و یک روان شناس بسیار ماهری بوده که در تمام فنون متباحر بوده است اونهایی که ایردار اینجوری میگن حالا مولان روم در کتاب خود مصنوی و معنوی در مورد منصور حلات میگوید که قلم چون بدست قداری فتا ده، لا جرم منصوری بداری فتا رحمت الله عن در وفا، لعنت الله عن در غفا منصوری گفت ان الحاق گشت ما فرعونی گفت ان الحاق گشت پست حالا میگه که قلم چون بدست قداری فتا ده، چون قلم قضا قلم ده دست انسان قدار و خائن افتاده لا جرء منصوری بداری فتا منصوری بالاداری بالداری بیادام کسیدم اما هو باجروتر چکی میگوید که رحمت الله آن انا را در وفا رحمت خدا بر اون آنایی که منصور حق میگف و لانت خدا بر اون آنایی که فرآن میگو فرآن میگو ان الحق با در اعدامی در میگوید که منصور می گفت ان الحق گشت ماست منصور میگو ان الحق ماست میشود به و می سلیолн و فرانی گفت انا گشت پس فرار هم میگه انا الحق پس شد و ذلیل شد حالا این انا چگونه بود منصور حلا در مورد ان الحقش میگه اونجوری نمیگفت که من خدا هستم یا خدا در من حلول کرده بهتر این است باید کلام رو تفسیر بکنین بجای اون رو به جهنم بیاندازیم اگر ما امروز کلام را تفسیر کردین روز قیامت به خاطر این کلام با جهنم نمیریم اما اگر مسلمانی رو کافر کردین و اور کافر نبود روز قیامت قطعا این گناه به ما برمیگرده داخل صحیح بخاری حدیث داریم اگر شخصی مسلمانی گفت که یا کافر تو, تو کافر شدی نبی کلی فرمودند که این کلمه تو کافر استی به زمین نمیوفتم به یک از اینها برمیگردد یا بر اون واقع میشه یا بر این واقع میشه گناه بر این برمیگرده بر حالا ما منصور نگفتی کافر ما گناهکار نشدین اگر گفتیم کافر و کافر نبود تپ ده حدیث صحیح بخاری وبال کلم کفری که تکفیر کردی بر گردن ما می آیدین حالا مسعود حلاج میگو ان الحق این انا الحقی که گفت این حکایتی بود این حکایتی بود نه میگفت که من حالا خدا هستم داخل قرآن خداوند متعال داخل قرآن نگاهی کنید سوره طه سوره قصب ان شاء اونجا هست وقتی که موسی علیه الصبا و سلام به کوه تور و کوه تو نورانی شو شعاع تشبیه شو چیو انا ربکا فلما جاءه نور یانبئورک ما في و من حولها سبحان الله رب العالمین یا موسی انو انا الله العزیز الحکیم یا موسی انو انا ان الله از داخل داره از خود یک درختی صدا می آید، آیا در خدا شده؟ این کلمه آیا این در خدا هست؟ خدا نیست. هیچ کس نمیگه در خدا هست یا خدا داخل درخت اینجا دفوس کرده، یا حلول کرده. اینجور کسی نمیگه. اینجور حد این است که میگه انا الحق، من بر حق هستم. یا داره از قول خدا حکایتی الله میگه من حقم. لكن میگه من بر حقم. نمی نمیگفت. بعدها یک طریق کارهایی اگر میکرد و اونها رو نمی فهمیدن منصور حلاج دوباره چکار کردن در محاکم قاضی آوردند محاکم قاضی آوردند وقتی محاکمه کردن بعضی میگویند بعضی می, می که منصور پسر خود قاضی بیمار شد گفت حالا طبیب تجویز کرد که به اون یک میوه ای بده میوه سیب بود و فصل سیب هم نبود زمستان بود هیچ چی نبود گفت تو حالا که میگی من اولیا هستم حالا من بزرور هستم کرامت داری حالا سیب بده مسخره کرده مسخره کرده دستو بالا بود بالا پایین برگردون داخل دهت سیم گو بگیر ویدیدن گو بیدی از کجا آوردی بو از بهشت بعد نگاه کردن که این سیب کرم خورده بود کرم داشت ولی گو داخل بهشت و کرم هست تو بهش کرم نیست چیزا اونجا خراب نمیستم عجب جواب میدن فرمودن که آن چیزی که از دار البقا به دار الفنا بیاید آثار فنا داخل ظاهر می این به دار الفنا آمده اینجا کی رو هست جواب داد بعد هایی در محاقمه بردن وقتی به محاکمه بردن این خود گوش کنید چیزهای واقعی اند اهل تاریخ نهارو هر روز کرده وقتی به محاکمه بردن وقتی سوال می کرد یکی گفت که الا جواب میداد سوال و بو جواب و آخر و قاضی که اس کو یا زندگی زندگی, زندگی سے فقید شو قاضی بو همو بے صلا وزیر گو پروستی بدو اسے یہ آقا کو زندگی وزیر دی ان کافه بہ قاضی بو من نہ گو تھا زندگی بہ زندگی نہیں میں اللہ میکنم توبیہ میکرم نہ انگریز گفت نہ بنوستی وزیر گو بنوستی بنوستی این قاضی گو زندگی پر زندگی اللہ و اعلام بشی بر اعدام کردن اعدام کردن چی اعدام میکردن آوا دست و کردن فارقت کردن دست با کردن پای با کردن یک بار و اخ فقط سکوس قسطوری و آخر گفتن که اختلونی یاثقات اختلونی فین فی قتل حیاتی و حیاتی بعد ممات منو بکشید مرا بکشی ای دوستا مرا چون در برگمز من زندگی من شروع میشه و زندگی بعد از برگمان هست اونو کشتن به دار کشیدن بعد با اون رو به آتش کشیدن پودرش کردن برسور از حالا نباید اینجور زود خضاوت کرد و میگم بعد وقتی پودر شد دجله تغیان کرد تغیان که داد بغدادو زیر آب میبرد منصور حالا قبله شاگردش گفته بود که اگر منو بکشن باید من منو میسوزونن و بعد اون دجله حالا تغیان میکنه بعد می حالا علم غیب ندون نه علم غیب نبودین این فقط کرامات بود یا خواب دیده بوده چیزی هر این داخل زندگی نامش علمی آید و بعد از اون که خود داخل همین آب پودو بنباریزدی دریا آرام میگیره همیش اتفاق افتاد و باره پودرهای ریختن آرام شد رف. بیار حال من سر هرکی بود گذاشته رف. اما قضاوتی که علماء کردیان علمای کرده کردیان قضاوت این مسلمان موده از افراد نیکو صالحی بوده فتح کوفه را برترین شخصی دادن کار درستی نیست. زیرا که ایک پتفای کف اگر مسلمان باشه و روز قیامت و بالجان ما می شود اگر مسلمان نبود و ما حسن زن داشتیم به خاطر خوب روزره خداوندی متعلمان روز قیامت معاخذه نمی کند برای داشتن حسن زن اصلا به انسانی اصلا به انسان حسن زن داشته باشیم ما معاخذه نمیشیم عمل از سویزن بدون دلیل داشته باشیم قطعا معاخذه می شویم